صفحه ی امام رقص والس رسید ولی دنیا در نظر کاترین تیره بطار گردید زیرا دید فرونسکی همچنان در کنار آنکارمینای ایستاد و مثل این است که خیال ندارد آنها را ترک گوید و برای رقص به سوی او پیش بیاید یه و وحشت بر دختر بیچاره مصولی گردید زیرا او به همه یه جوانانی که مایل بودند با وی برخصند جواب رد داده بود و هر جوانی هم شریک رقص خود را تا کنون انتخاب کرده بود قلب نازوکش بشکست کاخ امید و آرزوهایش واژگون گردید کاترین دریافت تنها وسیله‌ای که ممکن است او را از شرمندگی و رسوایی نجات دهد این است که خود را به ناخوشی زده و از سالن خارج گردد ولی دختر بیچاره این کار را هم نتوانست بکند زیرا چون کبک تیر ای در سالن راه رفته، سپس خود را به نیمکتی که در گوشه‌ای بود رسانیده و بی‌حال به روی آن نشست. با اینکه کاترین در آن موقع ظاهراً چون پروانه زیبایی بود که بر روی شاخه می نشیند تا قدری استراحت کند، سپس بالهای خود را بک شاید و در فضای لایه‌تناجی به پرواز درآید، ولی باز قلبش از شدت سنگینی غم و اندوه و یه و ناامیدی یارای حرکت را نداشت با وجود این کاترین پیش خود تصور میکرد که من اشتباه کرده باشم و هیچ کنه رابطهی که من تصور آن را میکنم در بین آنها وجود نداشته باشد ولی قلب و چشمانش او را مطمئن ساختند که آنچه دیده و حس کرده درست احساس نموده و اشتباه ندوده ناگهان صدایی را شنید که چنین میگوید آه کاترین تورا چه شده است کاترین سربلند کرد و کنتس نوردستون را دید کنتس با گامهای ای به او نزدیک شده بود لبهای کاترین لردید و بدون آنکه جوابی بدهد از جای برخاست کنتس فریاد برآورد کاترین آیا در رقص واس شرکت خواهی کرد کاترین با صدایی که از بغز و قصه گرفته بود پاسخ داد نه نه کنتس گفت فرانسکی در برابر من به التماس و تضرع از آنا کارنینا خواست که در رقص والس شریک او باشد. آنا از او پرسید آیا به مدموذر کاترین وعده نداده ای که در این رقص با او برخصی؟ فرانسکی جواب نافی داد و اصرار کرد که با او برقصد کاترین از روی بیتنایی شانه های خود را بالا انداخته و آهسته گفت برای من فرق نمی کند. اما کنتس می دانست که کاترین فرانسکی را دوست دارد. زیرا کاترین چندی پیش مردی را که او را دوست می داشت به خاطر فرانسکی از دست داد در حالی که شایستگی آن را نداشت. قرار بر این شده بود که کنتس و کورمونسکی با هم در رقص والس برخصند. ولی کونتس در آخرین لحظه از کورمونسکی پوزش خواسته از وی تقاضا کرد که با کاترین برخصد و بدین گونه کاترین از شرمندگی و رسوایی نجات پیدا کرد. از خوششانسی کاترین این بود که وی مجبور نبود در اسنای رقص با کرمونسکی صحبت کند زیرا کرمونسکی مراقب رقص کنندگان بود و با اشاره دستورهایی به نوازندگان میداد. چشمان کاترین به کارنینا و سرونسکی که با هم می افتاد و یقین حاصل کرد که ضربت قاطعی بر وی فرود آمده است. آن دو مثل این بود که از همه چیز بیخبر هستند و در عالم دیگری سیر می کنند. در چهره فرانسکی اثر انفعال و ضلتی دیده میشد و حالت او شبیه حالت گناهکاری بود که پی به گناه خود برده باشد. هر وقت تبصم بر لبان آنا ظاهر میشد شد، چهره فرانسکی باز می گردید و همین که چهره آننا در هم میشد چهره فرانسکی هم تیره می کاترین حس کرد که نیروی عظیمی توجه او را به سوی آنا جلب او نتوانست از تعجب و آفرین خودداری کند و با اینکه جامعه ساده‌ای در برداشت به زیبایی و دلربایی وی اعتراف ننماید ولی این زیبایی و دلربایی هولناک و آمیخته به خشونت و سنگ دلی بود کترین هرچه بیشتر تصدیق به زیبایی و دلربایی آننامی کرد بیشتر احساس یأس و ناامیدی و شکست در خود مینمود این احساسات در چهره اش به طوری آشکار گردید که وقتی فرونسکی نزدیکش شد چیزی نمانده بود که او را نشناسد. فرونسکی برای اینکه چیزی به کاترین گفته باشد گفت: "عجب جشن با شکوه و فرخنده ای است." کاترین پاسخ داد: "بری." در این موقع رخص کنندگان آن دو را از هم دور کردند. موسیقی تعطیل شد و رخص کنندگان نیز دست از رقص کشیدند. بعضی از آنها بر اثر شدت خستگی نفس زنان روی نیمکت‌ها بیارامیدند. کاترین، بانوی که آنا کارنینا بود، توجه نمود و او را دید که بین کورماسکی و فرونسکی ایستاده و تبصم می می‌کند. کاترین در حالی که برق چشمان و حرکات دست‌های آن کارنینا را میدید گفت: «آری، در زیبایی او یک چیز مرموز شیطانی وجود دارد.» آنّا کارنینا نمی‌خواست که در آنجا بماند و شام را با میهمانان صرف کند. کارمازکی برای اینکه او را تشویق و ترغیب بماندن کند گفت: آنّا کارنینا، من رقص جدیدی را ابتکار کردم و مایلم که تو پس از صرف شام در این رقص شرکت کنی. آنّا کارنینا در حالی که تبسم کرد گفت: نه، من باید بروم. کارمازکی از لحن جدی آنها دانست که وی در رفتن مصمم است. آننا کارمینا در تغییر کلام خود گفت من امشب در موسکو بیش از آنچه در فصل زمستان در پترزبورگ رخصیدم رخص کردم وانگهی من باید استراحت و برای سفر خود را آماده نمایم فرونسکی فریاد برآورد آیا راستی فردا خواهی رفت؟ آنا گفت آری؟ آنگاه آنا نگاه سریعی به فرونسکی افکند مثل این بود که از جرأت و جسارت وی متعجب شده است. ترانسکی هست که نگاه های آنها اعماد قلب او را شکافته و شعلی برافروخته است. قطار حرکت کرد. آنا با حرکت دست از برادر خود خداحافظی کرده و همچنان او را می‌نگری ترن از ایستگاه دور شد در آن موقع آن نازیر لب گفت سپاس خدای را که همه چیز به پایان رسید آنگاه خود را بر روی نیمکت افکند و پیرامون خیش را نگریست و برای بار دوم تکرار کرد خدا را شکر فردا، سیرج و الکسیس کارنین را خواهم دید و زندگانی هم مثل همیشه به طور طبیعی و معمولی ادامه پیدا خواهد کرد آنگاه در چمدان خیش را باز کرده و از آن بالش کوچکی بیرون آورده بر روی زانوان خود گذاشت و روپوشی هم درآورده پاهای خود را در آن پیچید در نزدیکی او دو خانم سال خورده بودند آنها دربارهٔ وسیله گرم شدن در های ترام از وی سوالاتی کردند او به اختصار به آنها پاسخ داد زیرا آنقدرها میل صحبت کردن با آنها را نداشت آنا کارنینا کتابی از چمدان بیرون آورد و مشغول مطالعهٔ آن گردید او نخست نتوانست درست مطالعه کند. زیرا مسافرین قوقا و آشوبی راه انداخته درباره سردی و بدی هوا و شدت بادهایی که در خارج میوزید و احتمال وقوع طوفانی را اعلام میکرد گفتگو میکردند لحظهای سر و صدا خاموش شد و آنا کارنینا مشغول خواندن گردید یک مرتبه متوجه شد که او آنچه را که میخواند نمیفهمد و او هنوز در فکر شهر موسکو و آنچه در آنجا دیده است می باشد. او به یاد جشن باشکوه و, و همچنین به یاد فرونسکی و نگاههای خریدار او افتاد و متوجه شد که کاری نکرده که اکنون وی را شرمنده سازد ولی باز هم نزد خویش احساس ندامت و خجالت کرد. به قدر این حس در قوت گرفت که مصمم شد آن را از خود دور نماید و در جای خود نشسته پیش خود گفت این چه معنی دارد آیا من می ترسم که با حقیقت روبرو شوم چرا احساس پشیمانی و ندامت نمایم؟ بر اثر این افکار تبسم تلخی بر لبانش نقش بست آنگاه کتابی به دست گرفت و سعی کرد که آن را بخواند ولی نتوانست چیزی از آنچه چه می بفهمد چون چونین دید کتاب را به کناری افکنده از جایی برخواست و به سوی پنجره رفت و چهره خود را به شیشه سرد چسبانید حس کرد که اعصاب او خسته است و انگشتان او پاهای او بدون اراده حرکت می کند و قفه نفس از وی سلب گردید است. ترن به ایستگاه بعدی رسید آن به سوی در واگن رفت یکی از معمورین راه آهن از وی پرسید خانم آیا می خواهید خارج شوید؟ آنا گفت آری من احتیاج مبرمی به هوای آزاد دارم هوای اینجا خفه کننده است همین که در را باز کرد هوای سردی که آمیخته با قطعات برف بود بر چهره او خورد ولی آنا اهمیتی به برف و باد نداده از ترن خود را به زیر افکند برف و باران بر سر روی او فرود آمده بود باد شدیدی جامعه او را بازیچی خیش قرار داد و چون سفیر سود گوش او را نواخت ولی آنکارمینا اعتنایی به چیزی نکرده در ایستگاه بنای قدم زدن و یه خود را از هوای سرد آزاد گذاشتن مشغول داشت همین که سوت حرکت قطار زده شد به واگن خود مراجعه کرد و در را از پشت بست یک مرتبه در باز شد هوای سرد و شدیدی که نزدیک بود کلاه او را ببرد داخل گردید آنا با دو دست کلاه خود را محکم گرفته پشت خیش را نگرید ولی به ناگاه فرانسکی را دید که دم در ایستاده است. فرونسکی در برابر آنا خم شده اظهار کرد که برای هر گونه خدمت گذاری حاضر است. آنا نگاه طولانی بر به و پاسخی به او نداد. آننا باز در چشمان فرانسکی علامات شیفتگی و خضوع و خشوع مشاهده کرد. آننا تمام شب گذشته و همچنین تا چند دقیقه پیش، فکر کرد که رابطه او با فرانسکی ابدا فرقی با رابطه او با صدها جوان دیگری که در همه جان‌ها را دیده و میبیند ندارد و نباید بیش از این هم درباره فرانسکی اندیشه کند چه؟ فرانسکی جوانی نبود که اتفاقا در جشنی با وی و میباید وی را فراموش کند همچنین چون آن جشنی که باعث آشنایی آنها شده بود پایان یافته لذا هم می باید به پایان برسد ولی اکنون که فرونسکی را دید احساس خوشبختی آمیخته به تکبر و غروری در خود نمود آنها دیگر احتیاط نداشت که از به علت حضور او را در قطار بپرسد زیرا به خوبی سبب آن را دریافته و لازم به پرسش نبود آری آنها پی بود که فرونسکی برای این مسافرت کرده است که هر جا می با او باشد به فرونسکی گفت من نمی دانستم که شما خیال مسافرت به شهر پترزبورگ دارید. مقصودتان از این مسافرت چیست؟ هنگام عدای این کلمات چهره آنا آننا از خوشحالی و سعادت باز و خندان شد. سراسکی در حالی که چه... خیره به چشمان درشت و زیبای آنا کارنینا نگاه می کرد، پاسخ داد، چرا به پترزبورگ می روم؟ شما می دانید که من برای این مسافرت می کنم که هر جا می روید با شما باشم. کمی بعد فرانسکی مثل اینکه با خود حرف می‌زد، چنین اضافه کرد من جز این کار چاره دیگری نداشتم هنوز باد در خارج به شدت میوزید صدای سوت ترن با ناله مخوف و محسون باد و طوفان توئم بود ولی ناله باد و سوت ترن در این موقع در گوش آناکارنینا از نقمات موسیقی دلکشتر و شیرینتر بود زیرا این صداها با صدای فرانسکی آمیخته شده بود فرانسکی آنچه را که آنا آرزوی شنیدن آن را داشت و قلبش خواهان آن بود و عقلش از آن مضطرب میگردید به آنا کارنینا میگفت وی با کمال خشوع و خضوع چنین میگفت خانم ببخشید میترسم سخنانم شما را رنجانده باشد آنا گفت آنچه که گفتی صحیح نیست و باید آن را فراموش کنی همچنان که من هم سعی خواهم کرد که آن را فراموش کنم. مرد گفت هرگز آنها را فراموش نخواهم کرد و من نمیتوانم یک کلمه از آن کلمات را فراموش کنم. آنها در حالی که سعی میکرد چهره خشناکی به خود بگیرد اظهار داشت بس است بس است. آن آنا کامینا به جای خود رفت و نشد و از آنچه گذشت در دریای فکر و اندیشه فرو رفت. آنا نتوانست تمام کلماتی را که فرانسکی یا خود او به زبان رانده بودند به خاطر آورد ولی چنین احساس کرد که این صحبت کوتاه آن دو را به هم خیلی نزدیک کرده است و این امر در این حال او را خوشنود و بیمناک و نگران نمود اضطراب و خستگی اعصاب فرانسکی فوزونی یافت به طوری که چنین پنداشت که دل او نزدیک است پاره شود آنا تمام شب را در یک رو خیال گذرانید پس از آن خستگی و خواب بر وی چیره شد و چشمان خود را بر روی هم گذاشت و از خواب بیدار نشد مگر وقتی که ترن به شهر پترزبورگ رسید. همین که از واگون خارج شد شوهر خود را در انتظار خیش یافت. نگاه آنا کارمینا بر چهره عبوس و گرفته و چشمان برامده شوهر خیش افتاد و نتوانست آهسته در پیش خود این کلمات را نگوید. را به گوشهای او چه صدمه وارد آمده است چون این به نظر کارنی نرسید که ساکنون گوشهای او را به آن بزرگی و زخامت ندیده است شوهرش به بین نزدیک شد در حالی که همان تبسوم توسخورامیز را بر برلبان داشت و با چشمان وسیع و خسته خود آننا را نگاه کرد آنا از نگاه های او احساس کرد که باری سنگین بر قلب او گذاشته می شود و احساس نفرت نمود شوهرش با صدای آرام و طبیعی به وی گفت من با همان شروع شعف شوهری که در ماه اول ازدواج خود می باشد به استقبال تو آمدم. آنگاه تبسمی می کرد. آنا گفت سیرچ کجاست؟ مرد گفت آیا شایده است که با این صدی و بیمیلی با شوهر مشتاق و بیقرار خود رفتار کنی؟ حالش خوب است. فصل پانزدهم آن شب هم فرانسکی نخوابید ساعات درازی را نشسته و بر روی خود می و هم آننا. همه اشخاصی که در پیرامون فرانسکی بودند از سکوت دراز او در شگفت ماندند. یکی از آنها خواست او را سر حرف بیاورد، ولی موفق نشد. حاضرین شانه های خود را بالا افکنده و یقین حاصل کردند که افسر جوان یعنی فرانسکی مبتلا به مرض کبر غرور است. و امیدی به شفاق و بهبودیه نیست. اما فرانسکی در دریای افکار و خیالات خود قوته بود. او حس میکرد که خوشبخت مردان روزگار است. زیرا میدید که توانسته است نظر آننا را جلب کند. تنها امید و آرزوی فرانسکی این بود که آنا کارنینا را ببیند و صدایش را بشنود. ولی فرانسکی شوهر آنا کارنینا را پیش از خود آن دید. و او را در بین کارمندانی که به سوی او دویده و راه را بر او گشودند شناخت. فرنسکی بی اختیار زیر لب گفت: آه، شوهر او آمد. او میدانست که آنا کارنینا شوهر داشت، ولی نمی خواست باور فرت که او شوهر دارد. اما اکنون با چشمان خود شوهر آنا را میدید که با دست خشن و بزرگ خود دست نرم و کوچک آنا را می گیرد مثل شخصی که متاع گرانمایه خود را با ولع تمام در دست گیرد فقط در آن موقع فرونسکی پی به وجود شوهر کار می بود در آن موقع حالت او شبیه حالت تشنهی بود که پس از سرگردانی زیاد نفسدنان به لب چاه آبی خود را برساند و مشاهده کند که سگی یا خوکی خود را به آن چاه رسانیده و آب آن را آلوده و غیر قابل شرب نموده است حس نفرت و انزجار در فرونسکی افزون گردید. هنگامی که خیره به کارنین شوهر آنها نگاه کرد و متوجه وقار و کنسردی و درازی گوشها و بزرگی پاهای او گردید فرونسکی با دقت مراقب دیدار زن و شوهر بود و در این ملاقات متوجه اضطراب و نگرانی که در چهره آنها هنگامی که با شوهر خود صحبت میکرد گردیده خیشتن را دلداری داده و پیش خود گفت نه آنها کارلینه شوهر خود را دوست نمیدارد و نباید هم او را دوست بدارد وقتی فرونسکی نزدیک آنا کارنینا شد متوجه شد که آنا پی به نزدیک شدن او برده و خواست به او نگاه کند ولی از این امر منصرف شده همچنان مشغول صحبت با شوهر خود گردید فرونسکی در حالی که قامت خود را در برابر زن و شوهر خم می کرد، آنا را مخاطب قرار داد و گفت امیدوارم در راه به شما بد نگذشته باشد آنا کارنینا به اختصار پاسخ داد خیر بد نگذشت سپاس گذارن. دیگر فرانسکی در چهره خسته آنا آن علامات و اشارات و عشقه و نازی که سابقاً از حرکت و لرزش مجگانها و شکفتن لبهای می‌دید مشاهده نکرد ولی متوجه شد که آنا همین که با او صحبت کرد چشمانش از خوشحالی زد از این رو در خود وجد و سروری احساس کرد کارنینا به شوهر خود نگاه کرد تا ببیند که آیا فرانسکی را می‌شناسد. الکسیس کارنین شوهر آنها سر برگردنده زیر چشم فرانسکی را نگاه کرد و سعی نمود که او را به خاطر آورد. آرامش و بی فرانسکی با خونسردی و تحقیر کارنین به هم تصادم نمود. مثل اینکه آهن به آهن بخورد. آن کارنینا جوان را بدین گونه به شوهر خود معرفی کرد. کونت فرانسکی کارنین در حالی که دست خود را با خونسردی به سوی جوان می میکرد گفت آه، آقای به گمانم پیش از این ما همدیگر را دیده باشیم. آنگاه رو به همسر خود آننا کرد و با کلماتی شمرد گفت: تو قبلا با مادر مسافرت کردی و اکنون با پسر مراجعه نمودید. آنگاه متوجه فرورفتگی شده در تقریب کلام خود گفت: بدون شک شما مرخصی گرفته و به اینجا آمده اید. منتظر افسر جوان نشده به همسر خود با همان لحن تمسخرآمیز هم گفت: بدون شک در هنگام فراغ عشقای زیادی در ایستگاه موسکو ریخته شده است و با این صحبت خود خواست به فرانسکی بفهماند که مایل است با زوجه خود آنا کارنینا تنها بماند و به این امر هم اکتفا نکرده رو به افزر کرد و در حالی که کلاه خود را به عنوان خداحافظی بلند می کرد رفت ولی فرانسکی از جای خود حرکت نکرد بلکه رو به آنا کارنینا کرد و گفت امیدوارم که به زودی خدمت شما شرفیاب شوم. کانین با چشمان خسته خود به او نگاه کرده و با سردی تمام گفت ما خوشحال خواهیم شد که به خانه ما تشریف بیاورید ما اصولا هر روز دوشنبه از میهمانان پذیرایی میکنیم آنگاه پشت به فرانسکی کرده و عشوخی به زوجه خود گفت چقدر من خوشبختم که توانستم نیم ساعت از وقت خود را به و به استقبال تو بیایم تا درجه عشق و علاقه خود را بر تو ثابت نمایم. آنا کارنینا شوخی شوهر را بدین گونه پاسخ داد. آیا مقصود از ثبوت عشق و علاقه این است که در نظر من مهم و بزرگ شوید؟ آنا بدون اختیار به صدای پای فرانسکی که دور میشد گوش داد. آنگاه از شوهر خود درباره پسر خیش، سیرج پرسید که در مدت غیبت او چگونه اوقات خود را است. فرنین پاسخ داد: مارینا به من گفت که حال او خیلی خوب بوده، ولی به اندازه من از دوریت متأسف و نگران نبوده است. کنتس لیدیا ایفانوفنا، بسیار از حال شما میپرسید و چنانچه چه می‌دانید؟ او به قضیه اوبلوفسکی خیلی اهمیت میدهد به این مناسبت بگو ببینم آیا در ماموریت خود موفقیت حاصل کردی آنا گفت آری سپاس خدایی را آنگاه برای شوهرش شرح مسافرت خود را با کنتس فرونسکی و رسیدن به مسکو واقعی ناگواری که در ایستگاه برای او رخ داد و آنچه را در بین او و برادرش ابلونسکی و زوجه ابلونسکی داریا رخ داده بود تعریف کرد که شرح مسافرت خود را به پایان رسانید کارنین با لحن خشنی گفت با اینکه بلانسکی برابر توست او را مقصر میدانم در هر حال من از اینکه توانستی بین او و زوجش سلح به تو تبریک میگویم ولی بگو ببینم که مردم در موسکو درباره انجام وظیفه چه میگوید آنا شرمنده شد وقتی دید که اهمیتی به این موضوعی که شوهرش به دانستن آن همه علاقه دارد نداده است کارنین چون جوابی نشنید به آنا کارنینا گفت آنا اکید اون تو را رها کرده و به سر کار خود می روم. من از مراجعت تو خیلی خوشحالم و من از این به بعد دیگر تنها غذا نخواهم آن خورد انا کارنینا زیر لب گفت برو خدا به هم راحت انا در حالتی که شوهر خود را که دور می مینگریست پیش خود گفت او شوهر خوشغل با وفا و مهربانی است گویی آنا می خواست با این کلمات در برابر حریف نامرعی از شوهر خود دفاع کند. وگوی گوی حریف نامرئی به او میگوید که دوست داشتن چنین شوهری شوهری باور نکردنی است. ولی آنا باز در نزد خود چنین گفت. ولی چرا گوشهایش تا به این حد دراز و بزرگ شده است؟ یقین او موی سر خود را زیادتر از اندازه کوتاه کرده است. آنگاه به یاد نگاه فرانسکی به شوهر خیش افتاد و از خود پرسید: به چه حقی او آن به شوهرم نگاه میکرد؟ همین که آنا کارنینا به خانه رسید، سیرج پسرش اولین کسی بود که به استقبالش شتاف. آنا او را در آغوش گرفت و با مهربانی تمام بوسید. پس از آن آنا لباس خود را مرتب کرد و مشغول نامه نامه‌هایی که در قیابش آمده بود، گردید. آنا دیگر مانند سابق احساس شرمندگی نمیکرد او در خانه خود احساس آرامی نموده تحجب کرد که چرا شب گذشته احساس اضطراب و نگرانی نموده. پیش خود گفت چه اتفاقی رخ داد. هیچ. فروسکی سخنان پوچی گفت و من جواب را به او دادم. دیگر لازم نیست که در این باره به شوهر خود چیزی بگویم. زیرا اگر به او چیزی بگویم دلیل این است که به این موضوع اهمیت به خصوصی میدهم. به یاد آورد که چگونه سابقه بر این، یک جوانی را که از زیر دستان شوهرش بود و عاشق او شد و نزدیک بود عشق خود را به او آشکار سازد برای شوهرش کارنین تعریف کرد و کارنین به او پاسخ داد که هر زنی در جامعه به این چیزها برخواهد خود. او به نجابت و پاکدامنی و متانت او اطمینان دارد و خود را دلسخوش سرزنش و تردید قرار نخواهد داد و هم به خود و هم به او اهانت نخواهد نمود آناکانینا به یاد تمام این چیزها افتاد و پیش خود گفت پس ابدا لزومی ندارد که در این باره صحبت کنم به دینگونه آناکانینا آن شعله ای را که در چشمانش برق میزد و چهره‌اش را روشن می‌نمود مخفی و پنهان کرد که فصل زمستان به پایان برسد حانواده یه شربانسکی یکی از اعتبای بزرگ را خوانده تا کاترین را معاینه کرده مرض او را تشخیص دهد و داروهای لازم را به او بدهد دختر به حالت باری افتاده بود چهرهش زرد شده و بدنش لاغر گردیده بود دور چشمان درشت و سیاهش کبود شده بود با فرا فصل بهار، حالش بدتر شد. طبیب بعضی داروهای مقوی برایش تجویز کرد ولی از آن داروها فایدهی نبود. طبیب بزرگ و معروف آمد. این طبیب هنوز جوان بود او اصرار داشت که دختر را کاملا معاینه کند. وی اظهار نمود که خجلت و شرمندگی زنان و دختران در برابر طبیب جز یک نوع عقب افتادگی و نادانی چیز دیگری نیست. و برای اینکه او بتواند ناخوشی دختر مریض را تشخیص بدهد باید دختر را لخت و ریان معاینه کند پدر و مادر مجبور شدند به میل طبیب معروف عمل کنند و دختر هم ناگزیر شد هم درد بیماری و هم این خجلت لخت شدن را تحمل کند طبیب کاملا او را معاینه کرد آنگاه دست خود را شسته به اتاق پرنس شربانسکی رفت پرنس صرفهی کرد چیزی در هم نمود و به سخنان طبیب گوش داد فرانس مانند همه مردمی که از مرض چیزی نمی دانستند، اعتقاد زیادی به تبابت و اتبا نداشت و از این طبیب بی اندازه متنفر شده بود زیرا وی با اسلوب عجیب خود دخترش را معاینه کرده و تنها کسی بود که از مرض دخترش با خبر شده بود در این موقع شاستاد خانم شرباتسکی در حالی که همراه او طبیب خانواده دیده میشد، طبیب خانواده مرد متین و سالخورده‌ای بود، وارد شد. شاهزاده خانم طبیب معروف و جوان را مخاطب قرار داده گفت: آقای طبیب، چه دستگیرتان شد؟ و خواست اضافه کند که آیا امیدی هست؟ ولی جرأت نکرد این سوال را بکند. طبیب گفت: خانم من حاضرم سوالات شما را جواب بدهم ولی اکنون اجازه میخواهم تا با همکار خود من...